بسم الله الرحمن الرحیم بیننده گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خادم حرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود و بالعضرت ولی عهد عمینشان شعزاده محمد ابن سلمان آل سعود حفظهم الله و از خانه خدا خوش آمدید گفته برایشان حج مبرور و سعی مشکور آرزو دارند. پروژه خادم حرمین شریفین برای ترجمه فوری خدباها مشتمل بر شش زبان میباشد باشد که از زبان زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اردو، ملاوی و چینایی و همچنان زبان فارسی. اکنون توجهتان را به ترجمه فارسی خدبه عرفه که با وسیله فضیلت ماب شیخ محمد بن حسن آل شیخ از منبر مسجد نمیره در عرفات خطاب به حجاج بیت الله و مسلمانان ایراد کردید و توسط کمیته زبان فارسی مدیریت ترجمه مسجد الحرام به زبان فارسی ترجمه شده توجه فرمایید. سپاس اللهی بخشاینده مهربان را که بسیار عفو کننده سخاوتمند است. سایب رحمت فراخ و عرضانی کنینده نعمت های فراوان است. علم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و عليكم نعمه و و باطنه آیا ندیدید که الله آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمت خود را آشکار و پنهان به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است و گواهی می دیم که نیست معبود برحق مگر الله که به او کسی دیگری به حق پرستش نمی شود و گواهی می دیم که محمد بنده و فرستاده اوست رسالت را رسانید و امانت را ادا کرد درود الله بر وی و بر خاندان و یارانش با سلام فراوان باد اما بعد پس ای مسلمانان از الله بترسید زیرا که در ترس از او رستگاری آخرت و پیروزی دنیا نهفته است الله متعال میفرماید والآخرتو عند ربك للمتقين وآخرت نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است و نیز فرمود الا ان اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آگاه باشید همان و دوستان الله نترسی بر آنهاست و نه آنها غمگین میشوند همان کسانی که ایمان آوردند و پریزگاری کردند برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است. سخنانی الله تغییر است. این همان کامیابی بزرگ است. و از تقوی الله این است که ما به توحید او تعالی پای بند باشیم. چون آن بزرگترین چیزی است که الله به آن امر کرده است، و توحید یعنی پرستش الله به و الله انس و جن را خاطری آن آفریده است. الله متعال می فرماید و ما خلقت الجن و الانس ایلا لیعبدون و من جن و انس را نیافریدم، مگر برای این که مرا عبادت کنند. و چگونه الله را در عبادت تنها و خاص نسازیم در حالی که او بر رحمتش خیرهای فراوانی فرود آورده و تنها خودش مخلوقات را آفریده است و بندگان در پیشگاه او می ایستند تا انها را بر کارهای آشکار و پنهانشان مورد محاسبه قرار دید اللهی متعال می فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده هر رحمتی را که الله برای مردم بکوشاید کسی نمیتواند تواند که بازش دارد و آنچه را که باز دارد کسی جز او نمی تواند آن را روان سازد و او پیروزمند حکیم است و نیز فرمود و ربک الغنی و رحمه و پروردگارت بینیاز و صاحب رحمت بیکران است. و نیز فرمود فقر ربکم ذو رحمت واسعه بگو پروردگار شما دارای رحمت گسترده است. و ای خیرت با آثار رحمت الله در کائنات بنگرید. الله متعال میفرماید و هو الازه یونزل الغیث من بعد ما و شروع رحمته و هو الولی الحمید و او کسی است که باران سودمند را برای پس از آن که ناومید شدند نازل می کند و رحمت خود را می گستراند و او کارساز ستوده است. و نیز فرمود فنظر الاسار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتی ها رحمت الله بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند یقینا این الله زنده کننده مردگان است و او بر همه چیز تواناست و همچنین میفرماید و من رحمتی جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و تشكرون تشکرون و از رحمت خیش شب و روز را برای شما قرار داد تا در آن یعنی شب آرام بگیرید و تا در روز از فضل او روزی بجوید و شاید سپاس گذار باشید و فرمود قل من ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفس الرحمه بگو آنچه در آسمانها و زمین است از آنی کیست. بگو از آن الله است که رحمت را بر خود مقرر داشته است و در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است لما قد الله الخلق کتب فی کتابه فهو عنده فوق العرش این رحمتی سبقت غضبی آنگا که الله مخلوقات را آفرید در کتابی که نزد خودش بالای عرش می باشد نوشت رحمت من بر خشم و غضبم سبقت نموده است. و نیز از رحمت الله سبحانه او این است که دین اسلام را کامل گردانید چنانچه الله جل و علا در آیتی که در عرفه در این جای شریف نازل شده فرموده است الیوم اکملت تو لکم دینکم و اتممت تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم این دینی بزرگ که بر پنج رکن بنا شده است که عبارتند از شهادتین و بر برپایی نماز و دادن زکات و روزه داشتن ماه رمضان و حج بیت الله الحرام و این ارکان از اسباب نزول رحمت ها می باشد شهادت این یعنی گواهی دادن بر اینکه که محبود برحق جز الله نیست یعنی اینکه هیچ یکی به حق مورد پرستش قرار نمیگیرد جز الله پس تنها او را عبادت میکنیم و گواهی دادن این که محمد رسول الله است پس امرش اطاعت شده و خبرش تصدیق می گردد و الله عبادت نشود مگر با آنچه او آورده است. الله سبحانه او امر کرده تا در هر شب و روز پنج بار نماز برپا شود. و نیز به زکات دادن امر کرده است و آن عبارت از پرداخت عیسی معلومی از مال می باشد که به فقرا داده می شود الله متعال می فرماید و عقیمو و آتو الزکات و الرسول لعلكم ترحمون و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پانبر الله را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید و همچنین امر به روزه ماه رمضان و به حج بیت الله الحرام نموده است و در حدیث آمده است که ازاجه رمضان فتحت ابواب الرحمه آنگاه که رمضان آید درهای رحمت باز می شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای کسانی که سرشان را در حج می تراشند سه بار طلب رحمت کرده است و نیز از رحمت الله سبحانه و این است که ایمان را راهی برای جلب رحمت الله و طریق برای نجات گردانیده است. پس فرمود فَهَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ وفضل وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَاً اما آنانی که به الله ایمان آوردند و به او تمسک جستند به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد کرد و آنان را در راه راستی به سوی خود هدایتشان می کند. و پیامبر مهربانش صلی الله علیه وسلم بیان فرمود که ارکان ای ایمان شش چیز است و فرمود الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الخر و القدر خیره و شره ایمان این است که به الله و فرشتگانش و کتابها و پیامبرانش و روز آخرت و به تقدیر الهی اهم از خیرو شر آن ایمان داشته باشی و از رحمت الله سبحانه، این است که پیامبرانش علیهم السلام را به مردم فرستاد تا برای همه خلق رحمتی باشند متعال مطالب پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم فرمود و ما ارسلناکه الا رحمتا للعالمین ای پیامبر تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم و نیز الله سبحان او فرمود و ما کنتا به جانب تور از نادینا رحمتم من ربی کلی تنظر ما اطاهم من نظیر و تو در کنار تور نبودی آنگاه که ندا دادیم ولی این وحی رحمتی از جانب پروردگارت است تا گروهی را بیم بیمدیی که پیش بیم و ای برای آنها نیامده بود شاید که آنها پند گیرند و همچنین در وصف پانبرش می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمتا للذین آمنو منکم ایمان دارد به الله و مؤمنان را تصدیق می کند و رحمتی است برای کسانی که از شما که ایمان آوردهند و از نامهای او صلی الله علیه وسلم پیانبر رحمت است به این فرموده الله رحمان گوشتید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضل غلیظ القلب لم من حولک. پس سبب رحمت الهی است که تو با آنان و میربان شدی و اگر تون خو سخت دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخوا و در کارها با آنها مشورت کن و از رحمت الله سبحانه و این است که کتاب هایی برای رحمت به مردم نازل کرد که مشتمل بر شریعت های اصلاح کننده احوال آنان است اللہی متعال می فرماید اولم یک فهم انزلنا علیکل کتابه یتلا علیهم آیا برای آنها کافی نیست که و ما این کتاب یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود گمان در این قرآن رحمت و پندی است برای کسانی که ایمان می آورند و نیز الله سبحانه فرمود یا ایو الناس قد جاعت موعظة من ربکم و شفاء لی ما ای مردم براستی که برای شما از جانب پروردگارتان موزه ای آمد و شفای برانی آنچی در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. بگو فضل الله و برحمتی او پس باید بدان خوشحال شوند که آن از آنچی می اندوزند بهتر است. و بنابراین سلف امت از صحابه و کسانی که بعد از ایشان آمدند در مسیر سیرت رحمت همانگونه که الله توصیفشان کرده را آفتند رحمه و بینهم تراهم رکن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا در میان خود مهربانند آنها را در حال رکو و سجده بینی که از الله فازل و خوشنودی می طلبند همچنین پیانبران الله و دوستانش به خلق الله میربان بودند الی متعال می فرماید و من قبلی کتاب موسی امام و رحمه و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود و نیز در مورد خیزر فرمود آتیناه رحمت من عندنا و علمناه من علما از جانب خود با او رحمتی عطا کرده و علم فراوانی از نزد خود با او آموخته بودیم و به همین گونه رحمت مومنان برخی از آنان با برخی دیگر تا بر پایی قیامت ادامه خواهد یافت اللہ متعال فرمود "ثم ثمکان من الذین آمنوا و تواسوا بالصبر و تواسوا بالمرحمه اولئیک اصحاب المیمنه آنگاه از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند و یکدیگر را به محبت و مهربانی توصیه نمودند اینان اهل سعادتند که نام اعمالشان به دست راستشان داده می شود و اهل علم به کسانی که از آنها فتوا می خواهند رحم می کنند برای پیروی از این فرموده ای متعال و ایزا جاء کالذین یؤمنون بی فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسی رحمه و هرگاه کسانی که با آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند با آنها بگو سلام بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده که هرکس از شما از روی نادانی کاری بدی را مرتکب شود سپس بعد از آن توبه و درست کاری کند البته او آمر زنده مهربان است بلکه همه مؤمنان بر یک دیگر خودچنان که در حدیث آمده رحم می کنند مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفیم که مثل الجسد الواحد از اشتکا منه تدا له سایر الجسد و والسهر مثالی مؤمنان در محبت و میربانی و همدردیشان با همدیگر دیگر مانند یک پیکرند هرگاه عضوی از درد شکایت کند سایر اعضای پیکر آن را با تب و بیدارخوابی همراهی میکنند. و رحمت شاملی همه مخلوقات می شود چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ارحم من فیل اردی یرحمکم من فی, فی سما شما به کسانی که در زمین هستند رحم کنید تا آن که در آسمان هست به شما رحم نماید و نیز فرمود الراحمون یرحم و رحمان بر رحم کنندگان، الله رحمان رحم می کند و از فضل و لطف الله سبحان او این است که بر مبنای روابط اجتماعی را بر رحمت بنا کرده است رحمت میانی پدران و فرزندان و رحمت میان همسران و رحمت میان اقارب و نزدیکان پس در مورد والده این فرمود واغفظ لهما جناح الظل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربه صغیرا و از روی مهربانی بال فروتنی و خاکساری برای آنها فرود آور و بگو پروردگارا با آنان رحم نما همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند و در مورد شوهران و امسران فرمود و من آیاتی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه این فی ذلک لآیات لقومی تفکرون و از نشانه او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا با آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد گمان در این امر نشانه است برای گروهی که تفکر می کنند و مردی به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت آیا کودکانتان را می بوسید؟ ما آنها را نمی بوسیم. پیانبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا اگر الله رحمت را از قلبت کشیده باشد من می توانم به تو چیزی بکنم؟ بلکه رحمت همچنان ادامه دارد در تعامل با محیط زیست و چهارپایان پس می بینیم زنی بدکاری خاطر رحم به سگ تشنهی که برایش آب داد و بهش داخل شد. همان گونه مردی به خاطر دور کردن شاخه درختی از سر راه برای ترحم به مسلمانان تا اذیت نشوند وارد بهشت گردید بنابراین شایسته شایستاست تا رحمت راهکار و اساس در همه معاملات بشری قرار گیرد پیامبر صلی الله علیه و سلام میفرماید این لله میعطی رحمتا انزل منها رحمتاً واحدتاً بین الجن والانس والبهائم والهوام فبها تعاطفون و بها یتراحمون و بها تعطف الوحش على ولدها واخر الله تسن و الله تسان و تسعین يرحم بها عباده الله متعال داراي صد رحمت است از میانی آنها فقط یک درصد یعنی یک رحمت را به دنیا در میان جنوینس و چهارپایان و خزندگان نازل کرد که توسط آن با هم مهربانی و همدردی می کنند و با آن حیوانهای وحشی با بچه های خود مهر می ورزند و اللہ 99 درصد رحمت را به روز آخرت تخیر نموده که با آن به بندگانش رحم میکند و رحمت مردم بر یک دیگرشان دارای پیامدهای های زیبا و سرانجام سیدوده است که از آن محبت نشأت نموده و گذشت پخش می گردد و الفت حکم فرما شده و همکاری میانشان می یابد و رحمت زمینه های متعددی در زندگی معاثر ما داشته که شامل وضع انظیمه و لوایح و یا برگیری از وسایل نقل و انتقال ویا و یا کاربری تکنولوژی و وسایل اطلاعرسانی نیز می شود و از مزایل رحمت این که افراد امنیت و همه کارکنان در این مشایر را میبینیم که برای رهنمایی حجاج و کمک رسانی با آنان در عدای مناسکشان به ویژه برای سالمندان و ناتوانان و کودکان خوردسال آماده خدمت می باشند. و آن هم بنابرای توجیهات ای که فرمان روایان این سرزمین ضمن یک سلسله مسایی بزرگ که دولت عربستان سعودی برای خدمت حرمین شریفین و تقدیم خدمات چشمگیری که برای حجاج و کنندگان در همه زمین ها فراهم نموده انجام می شود. و همچنین از تلاش های سپاس شده پروژه های گسترش احرمین شریفین و پروژه های آماده مشاعر برای ادای مناسک و مرتب کردن زیر آنها می‌باشد. باشد. و پادشاهانی این سرزمین یک پی دیگری همچنان در مورد رعایت حرمین شریفین و حجاج و عمر کنیندگان از عد پادشاه صالح ملک عبدالعزیز رحمه الله، و از فرزندان نیکوکارش هر یک سعود، فیصل، خالد، فد و عبدالله الله درجات آنها را در الیین بلند دارد. و اکنون که در عد خجسته فیلی شاهد کارهای شکومندی در این سرزمین شریف هستیم که خاطر هر مؤمن را خوش می سازد. سعی و تلاش داشتند و دارد. پروردگارا یا حی یا قیوم، عیز الجلال و از تو مسئلت داریم اینکه خادم حرمین شریف این ملک سلمان بن عبدالعزیز را توفیق نصیب فرما. پروردگارا با او مؤید و ناصر و معین باش برای هر خیری پروردگارا برایش پاداش خیر بده به خاطر این همه خیر و خوبی که تقدیم می‌دارد و او را سبب هدایت و خیر و رحمت بگردان بار را بر شاهزاده محمد بن سلمان نیز برکت بده و جزای خیر نصیبش بساز و او را سبب خیر و رحمت برای همه امت بگردان و با آن چی دوست دوستداری و رضامندی تو در آن است توفیق بده ای مسلمانان با فضل رحمت الله نفسها تزکیه و پاک می شوند الله متعال می فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما ذکا منکم من احد ابدا ولاکن الله یذکی من یشاء والله سميع عليم. و اگر فضل الله و رحمت او بر شما نمی بود هرگز کسی از شما پاک نمی شد ولیکن الله هر که را بخواهد پاک می کند و الله شنوای داناست و نیز فرمود اینن نفس امارة بالسوء الا ما رحم به شک نفس یعنی نفس اماره انسان را پیوسته به بدی فرمان می مگر آنچه پروردگارم رحم کند. و الله را با وسیله رحمتش به بهش داخل می کند چنانچه در حدیث صحیح آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لن یدخل احد الجنة بعمله هیچ کس به وزی عملش وارد بهشت نمی شود گفتن شما هم یا رسول الله فرمود ولا انا الا ان یتغمدن الله بفضل منه و رحمه پسدید و قارب من هم به عملم به بهشت وارد نمی مگر اینکه آنگاه الله مرا در پوشش فضل و رحمت خود قرار بنابر این تا حد توان عملی درست کرده و رای احتدال را در پیش گیرید. رحمت الله از خلق انبای مصیبتها ها و بدی ها رد می شود چنانچه الله متعال می فرماید و ربک الغفور غفور و ذر رحمه و پروردگارت آمر زنده و صاحب رحمت است اگر به خاطر آنچه مرتکب شده اند آنها را مواخذه می کرد قطعا هرچی زودتر عذاب را برای آنان می فرستاد و نیز فرمود ولولا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا و الآخره لمسكم في ما افتهم فيهي عذاب عظيم. و اگر فضل الله و رحمت او در دنیا و آخرت نبود قطعا در آنچی با آن پرداختید عذاب سخت و بزرگی به شما میرسید و پروردگار مهربانی ما از شر دشمنی ما یعنی امون شیطان رانده شده به رحمتش ما را کفایت می کند الله متعال فرمود ولولا فضل الله علیکم ورحمته له اتبعتم الشیطان الا قلیلا و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود جز اندکی همگی از شیطان پیروی میکردید، کردید ای مؤمنان در آنجا اسبابی است که با آنها رحمت الله جلب می شود پس تقوی از اسباب رحمت است چنانچه الله مطال فرموده است اتقوا ما بین عیدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون از آنچه پیشروی شماست و از آنچه پشت سر شماست بترسید شاید مورد رحمت قرار گیرید و از دیگر اسباب رحمت گذشت و نرمش در معامله است پانبر صلی الله علیه وسلم فرمود رحم الله رجلاً سمحاً ازاباع و اشترا و ازقتدا الله رحم نماید مردی را که گذشت و آسانی را در پیش دارد هرگاه که بفروشد و هرگاه که بخرد و هرگاه که داوری کند و همچنین از اسباب رحمت الله تلاوت قرآن و مطالعه و شنیدنی به قرآن است چنانچه در حدیث آمده است مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و بينهم بینهم إلا حفتهم الملائکه و غشیتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هیچ گروهی در خانه از خانه الله گردیم هم جمع شده کتاب الله یعنی قرآن را تلاوت نموده و آن را با هم مدارسه نمی کند مگر اینکه فرشتگان آنان آن را احاطه نموده و رحمت الهی شامل حالشان گردیده و آرامش برایشان نازل شده و الله متعال آنان آن را میان کسانی که نزدی و هستند یاد می کند. والله مطال فرمود و ایزاقوری القرآن و فستم له و لعلكم ترحمون و چون قرآن خوانده شود پس با آن گوش فرادید و خاموش باشید تا مشمول رحمت شوید و نیز فرمود و کتاب انزلناه مبارک فاتبیعوه و لعلكم ترحمون و این قرآن کتابشت پر برکت که ما نازل کردیم از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا مورد رحمت قرار گیرید. و همچنین فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدا و قائمه یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل یست یستو الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ نمایت یتذکر اولو الالباب آیا این مشرق بهتر است یا کسی که در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است و از عذاب آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگارش و است بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند یکسان هستند تنها آخرتمندان پند میپذیرند و از دیگر اسباب رحمت الله برای بنداش خیر خواهی و برای خلق می باشد. چون الله متعال فرموده است این رحمت الله قریب من المخسنین. همانا رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است. و نیز فرمود نصیب و برحمت نامنشا. ولا لا اجر و المحسنین ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم میرسانیم و پاداش نیکوکاران را زایی نمیکنیم. و از دیگر اسباب رحمت الله با بنده تلاش او برای اصلاح دو متخاصم است چنانچه الله متعال فرمود انما المؤمنون اخوتون فاسلحو بین خواهی و اتق الله لعلكم ترحمون یقیناً مؤمنان برادرند پس میان تان سل و آشتی برقرار کنید و از الله بترسید باشد که شما مشمول رحمت شوید و از دیگر اسباب نزول رحمت الله تاعت الله و پیامبرش می باشد چنانچه الله سبحانه و می فرماید و اتیو الله و رسول لعلكم ترحمون و الله و پیامبر را اطاعت کنید تا مورد رحمت الله قرار گیرید و شکیبایی از اسباب نزول رحمت است الله متعال فرمود وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا ان لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه و, و اولئک هم المهتدون و مجده بده به صبر کنندگان آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آنی اللهیم و به سوی او باز میگردیم اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند ند هدایت یافتگان و از دیگر اسباب رحمت آن چیزی است که الله در این فرمودهاش یاداوری کرده است والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ومردان مؤمن وزنان مؤمن دوستان وياوريك ديگران أمر بمعروف و نعی از منکر می کنند و نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و الله و پیامبرش را اطاعت می کنند اینانند که الله به زودی آنها را مورد رحمت قرار می دید. بی گمان الله پیروزمند حکیم است و از دیگر اسباب رحمت آن چیزی است که الله در این فرموده اش یادآوری کرده است و رحمتی وسعت کل شی و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه کنند و زکات می و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهیم داشت آنان که از این یعنی رسول الله پیامبر امی درسناخوانده پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته میابند آنها را به کارهای خوب و پسندیده فرمان می دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان میدارد. و پاکیزه ها را برایشان حلال میگرداند و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و بارهای سنگین و قید و زنجیرهایی که بر آنان بود از دوش آنها بر دارد. و از دیگر اسباب نزول رحمت پروردگار جهانیان بسیار طلب آمرزش کردن است الله متعال می لولا تستغفرون الله. لعلکم ترحمون آیا از الله مرزش نمی تا شاید مورد رحمت قرار گیرید؟ ای مسلمانان، هر چند گناهانت بسیار باشد، از رحمت الله نومید مشاوک. زیرا که باب توبه باز است الله متعال فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم بگو ای بندگانی من که بر خود اصراف و ستم کرده اید از رحمت الله ناامید نشوید همانا الله همه گناهان را می بخشد. یقینا او بسیار آمر مهربان است. و نیز فرمود قال و من یقنت من رحمت ربه ایلا الضالون گفت و چی کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناومیت می شود؟ و از دیگر اسباب آن دعا کردن پروردگار است تا رحمتش را نازل کند چنانچه موسی علیه السلام گفت و ادخلنا فی رحمتی که و انت و ما را در رحمت خیش داخل کن و تو مهربان مهربانانی و امان که سلیمان علیه السلام گفت و ادخلنی برحمتی که فی عبادک الصالحین و مرا بررحمتی خود در زمره بندگان صالحت درآور. و نیز از دعای فرشتگان این بود. ربنا وسعت كل شيء این رحمتا و علما فاغفر للذین تابو و تبعو سبیلک و عذاب الجحیم. ربنا و جنات عزنی نلتی و ومن و صلح من آباییم و از و زریاتیم. اینکه انت العزیز الحکیم. پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است. پس برای کسانی که توبه کردند و تو را ورای تو را پیروی کردند بیا و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار. پروردگار ها را با های جاویدان بهشت که با داده وعددادهی وارد کن و همچنین هر که صالح باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان به همان بهشت وارد کن همان تویی که پیروزمند حکیمی وانها را از بدی ها نگه دار و هر کس را که در آن روز از کیفر بدیه ها مسلما به او رحم کردی و این همان کامیابی بزرگ است و همچنین از دعای والدین ما آدم و همسرش این بود که گفت گفتند قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این تغفر لنا و ترحمنا له من الخاصرین آن دو گفتند پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی مسلمان از زیانکاران خواهیم بود. و اصحابی کهف گفتند: ربنا آتینا ملدون که رحمتن و لنا من امرینا رشدا پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و رای نجاتی برای ما فراهم ساز. و اللہ مطال فرمود، انه کان فریق من عبادی قلون ربنا مننا فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین بیگمان گروهی از بندگانم میگفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کن و از دعای استوارترین ها در علم این بود که میگفتند ربنا لا لاتوز قلوبنا بعد ایز هدیتنا و اب لنا که رحمه این انت الوهاب پروردگارا دلهای ما را بعد از آن که ما را هدایت کردی از راه حق منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش براستی که تو بخشنده ای. حجاج بیت الله الحرام شما در سرزمین شریفی هستید که دعاها در آن اجابت می شود و رحمات در آن نازل می گردد پیانبر صلی الله علیه وسلم در مورد آن می فرماید ما من یوم اکثر من ان الله فی عبیدا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه علای متعال هیچ روزی مانند روز عرفه بندگان زیادی را از آتش آزاد نمی کند و یقینا او نزدیک می شود سپس با بندگان خود نزد فرشتگان افتخار می کند روایت مسلم و خاطر این پیامبر صلی الله علیه وسلم از روی رحمت با مسلمانان در حجشان روز عرفه افطار کردند تا برای ذکر و دعا متمکن شوند بنابراین شما نیز به الله از جانب خود خیر نشاندید و او را زیاد دعا کنید و از او برای خودتان و برای کسانی که دوست دارید و نیز برای کسانی که بر شما حق دارند و همچنین برای عموم مسلمانان خیر و رحمت بخواهید و دعا کنید که الله احوالشان را اصلاح نموده و امورشان را به ای حجاج از رحمت الله نیز بیان فعلی و عملی مصطفی برای مناسک حج است چون پیامبر صلی الله علیه وسلم در رفا خطبه ایراد نمود پس از آن, از آن اقامت گفته شد و نماز ظهر را رکعت با قصر ادا کردند سپس اقامت گفته شد پس عصر را دو قصر خواندند بعد از آن در عرفه بر شطورشان وقوف نمودند و ذکر الله را گفته و دعا کردند انگامی که قرص خورشید غروب کرد سوی مزدلفه در حرکت شدند در حالی که می فرمودند ایوه الناس علیکم به والوقار فا این ليس لیس ای مردم بر شما لازم است این که آرامش و وقار را در پیش گیرد. زیرا که خوبی در عجله نیست. این ارشاد را فرمودند تا از اسباب رحمت برخی از حجاج بر برخی دیگر باشد. و هنگامی که به مزدلفه رسید از آن گفته سپس اقامت گفته نماز مغرب را سرکت ادا کرد سپس اقامت گفته نماز ایشارا دو جمع و قصر ادا کردند آنگاه شب را در مزدلفه سپری نموده سپس نماز فجر را در اول وقتش ادا نموده و به دعا مشغول گردید تا اینکه هوا روشن شد و به سوی مینا در حرکت شده جمره عقبه را بعد از طلوع خورشید با هفت سنگ ریزه را می کرد و حدی خود را زبه نمودن موی اش را تراشید و بعد از آن توافی فازه را انجام داد و ایام تشریخ را در مینا سپری کرد و علا را ذکر می کرد و جمرات سیگانه را بعد از زوال رمی می کرد و در نزد جمرات سغرا و وستا دعا کرد و برای اهل حضور در ترک مبید در مینا اجازه داد و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که تا روز سیزده هم در مینا بماند و همین افضل است و برای عجله کردن در دوازده هم برای کسانی که مستعجل بودند اجازه داد. آنگاه که از حج فارغ شد پیش از سفرش بیت الله را تواف نمود که همان تواف ودا بود. به دعا توجه فرمایید.